بسم الله الرحمن الرحيم وبهين سعينته وهو خير مغرد ومعين ثم السلاة والسلام على أشرف الابياء والمسك خبیب الله العالمين و بالغاسم محمد سوالله عليه و غد آخر بيته خاهرين المأسومين من الآن إلى قيام يوم الدين سی یما بقیت الله فیل عربین در کتاب شریف کافی از امام صادق سلامت الله سلام علیه روایتی روایت شده به این مزموم که الابقاء و علم عمل اشد من العمل نگهداری عمل سختر از خود عمله دو مرحل موفق به کار خیر میشه خود این مشکلی که از فیلتر شیاتیم باید عبور کنه و اونجا نمیزنن موافقش نمیکنن. کنن هم عبور میکنه انجام میگیری مرحل دو بود نتیزی این کار خیر و خوب رو که انجام داده بیتونه حفظ کنه خیر یا توان انجام دادن کار خیری دارن اما قدرت نگه داریش ندارن کار خیر انجام بده کار بادم انجام در دست می ده ازا فرمدن این مورساده سرات رو سر برای. نگه داشتن اون اثر کار خیر و عمل صالح تر از انجام دادن خود عمله اگر شیاطین بهتونن کاری کنن که موافقت به عملشی میکنن اما گاهی اثر نمی عملش شد آدم موفق بشه به کاری انجام میده. حالا نوبت دوم میگیه با دیجوری ضبطش کنه که از اثر نیفته. اینجا خیلی مشکلات پیش بیاد چیزا خیلی انجام میدن و دگه نگه دارن. چیم ماه مرم اون ش روزه گرفتن عمل خیر از فیلترری شاطین عبور کرد دلشون میخواست بخورن نخوردن خیلی اوانم می کرد تحصیل نکرد روز رو گرفتن حالا بعد از گرفتن باید اینه حفظ کنه روز گرفتن و هر کاری خیلی اصل معنی خوبی داره اینو باید حفظ کرد حفظ نکنیم از دست میدین که علمی نکن میشه بعد ازا مرحل دوم سخت از اولی نیست اگر انسان مجاهده کنه ریاضت تحمل کنه کاری نکنه که کار خیر و عمل صالح رو خونسا کنه این وقت اعمال خیرش و آثارشون به تدرید جمع میشن زخیری میشن و سر از رشد و تکامل ایمان در میارن. بنابراین بر نوعی که ما روزی زحمت شدن، عبادت شدن، روزی دریفتن باید مراقب باشن که شیاطین بعد از تباه شدن ما آثار اون عمل صالح رو شراب بکنن و غالبا خراب میشه بعضی همون روز این دست میاد، بعضی همون روز این انده دست میتن بعضی همون روز انده دست میاد. عامل بزرگی که اثر این عمل خیر و عبه میبره منحصران گناه بره آدم یه گناه میکنه اثر منفی داره مقامل اثر مثبت کم میکنه از او دو بومی سه بومی تشتر میاد بره درابر این مراقب باشیم او عبه نرهیم وسیله گناه کردن چیزام مراقبت بعد از ما همزون مشکری سر از خودم با همزونه شیاطین روز ما روزود گل زننجرن چم خالی گرایش به معبیات زیادده گرش گناک کمی و مادم موفق میشه بعد کسی بعدی قضا میخورش کم پر میشه شیاطین گل زنجیر در میجانن اسمداری میگن تمام اون آها رو میبرن به بیشتره ولی اون ما که زحمت میکشنکاری خیر انجام میدن باید بعد از انجام دادن کاخیر بیشتر مراقب باشن که اینو از دست دادن ویل کم مراقب باشن از دست میدن. برن. این اختیارش به خود آدم خیلی اینجوری از زحمت می شوددم و دست میدن. همونطور که اندل حاصلنات یذب نه سییات انت سییعات هم یوززب در حسنات شما کاری خیر انجام دادی بعد خرابش میکن کاری بعد انجام بدی خدا بعدی قفران داده از بین میری برد برای باید مراقب باشیم نتایج همه ی عمال ساله رو من جمعه عبادت معالمزون که روزه است همه این رو بعد از این قضای مدت و زمان حفظ کنیم حفظش مراقبت میخواد مراقبت هم ریاضتی باید دقت کرد که اون آثار محفوظ بمونه سال بعدم آثار اضافه رو این بشه دو برابر سه برابر تا به صورت ایمان کامل و اصلاح کلی باطن و ظاهر انسان جامعه تحقیق بدا کنه و الله سامق عمل کنه به جلسش میره و چیزی نمیمونه تا دوباره باید مارمزون برسه و گوزه بگیری ذخیره زخیره بشه در باید دقت کنیم بعد مارمزون اجتناب از گناه بیشتر و مهمتر از اجتناب از گناه قبلی مارمزونه که موردم خیلی ذخیره داره، آسان خوبی داره، شیاطین مصممن که عمر خونسا کنن. ما هم باید موزع باشیم کاری نکنیم که خونسا بشه. آدمایی که پول تو جیبشون نیست راحتن، میرن میان. هی جی ورم دستو جیوش، بگوین چیزی میگه کاری نداره باش، اما پول داشته باشه، و قافل بشه میزنن. قافل نباد بود، صحنه گناه آمد، فرام باید موزع باشیم، گناه میخواد خونسا کنه. با تمام قدرت گناه نکنیم اگر این جور انجام دادیم و ادامه دادیم مشکلاتی پیش مشکل نمیاد و تمام آثار حفظ میشه تا سال بعد ان اما اگر نفلت کردیم مثل گذشته بر خرچلی با گناه یواش یواش رو میزنن و آدم نه تنها چیزی نداره از ما رضوم کمی هم بدکار میشه خب امیدواریم خدای متعال به همهمون توفیق و رحمت این طوال و قدرت هم انایت کنه بعد ما رمزون بیشتر بتونیم سعی کنیم گناه انجام نگیری انشاءالله نسار ارمان تجیبه ای اونهایی که گناه نمی کردن سه سلامات شد اللهم اشتر اللهم اللهم